فصل چهارم وسایل درمان من یه بیشعورم و هیچ خیالی نیست هر روز هی بهتر میشم و ملالی نیست حالا تحت درمانم تا بدونم که چطور با آدما تا بکنم یه آواز گروهی درمانی معتادان به مواد مخدر الکولی ها و سیگاری ها میتونن ناگهانی و به طور کامل اعتیادشون رو ترک کنن. اما چنین کاری برای بیشعور غیر ممکنه. بیشعور نمیتونه رفتارش رو به طور ناگهانی تغییر بده و نه مهمتر از اون شخصیتش رو به یک بار عوض کنه. کار درمان فقط در شهامت، سختکوشی و خوشقبالی منحصر نمیشه. بیشعور باید پاک بشه؟ دوباره برنامه ریزی بشه و دوباره به کار بیفته تکبر باید به فروتنی مبدل بشه وقاحت با وقار جایگزین بشه فرومایگی جاش رو به بزرگواری بده و خشم به مهربونی تبدیل بشه هیچ کدوم از این کارها ممکن نیست مگه این که بیشعور ابزارهای لازم برای درمان رو فراهم کنه یعنی مهارت انسانی برای عوض کردن خلقیات مزخرفش با صفات انسانی و با شعور شدن رو به دست بیاره. در این خصوص پنج ابزار هست که به درد بیشعور می خورن. هر یک از اونا نقش خودشون رو در فرایند درمان بر عهده دارن و بیشعور با بکارگیری اونا میتونه دوباره آدم بشه. این پنج ابزار رو بررسی میکنیم. درمان گروهی درمان گروهی، سنگ بنای روان درمانی برای معالجه بیشعوریه. در مراحل اولیه درمان، بیشعور خرتر از همیشه است و کاملاً مستعد اینه که به وضعیت معمولی خودش که همیشه مملو و از تکبر، وقاحت و فرومایگی بوده برگرده. درمان گروهی به او کمک میکنه تا خودش رو حفظ کنه و دائم به او یادآوری میکنه که باید از انجام کارهای بیشعورانه منصرف بشه. او در این جلسات نمیتونه به چاخان و کساافت‌کاری‌های معمول بیشورها ادامه بده چرا که دور و برش پر از آدم‌های بیشورتر از خودشه و هناش پیش اونا رنگین نداره علاوه بر این وقتی به ساگیر بیماران تحت درمان در گروه نگاه میکنه با خودش خواهد گفت اینا دیگه کیان اصلا دلم نمیخواد مثل یکی از این اوزیا باشم بعد میفهمه که خودش هم یکی از اون اوزیاست اصلا بیشعوره و این امر او رو در اصلاح خودش مسمم تر می‌سازه درمان فردی درمان بی می‌تونه به صورت فردی انجام بشه به شرط اینکه درمانگر برای معالجه‌ی آدمای دقل و خشنی که متمایلن داشتن هر مشکلی رو انکار کنن دوره‌های تخصصی ویژه‌ای دیده باشه البته در موارد خاص شاید لازم بشه روش‌های جدید هم ابدا بشن به عنوان مثال، اگه یه بیشعور خشن و عصبانی مثل یه بشکه باروت منتظر جرقه باشه، بهتر جلسات درمان در میدان مین یا محل انهدام مواد منفجره برگزار بشه. شک درمانی بعضی بیشعورها در مقابل درمانهای معمولی مقاومت میکنن. برای برای بازگردوندن شعور به این عده باید کاری کرد تا به اونا شک وارد بشه. البته منظور شوک برقی نیست بلکه درمان با شک روانیه. چند نمونه در این باره. یک. اگه با بیشعوری سر و کار دارید که نه شعورش بیشتر میشه و نه اصولا برای شعور داشتن ارزشی قائله، بفرستیدش وردست بیشعورترین بیشعوری که میشناسید تا مدتی کار کنه. شک ناشی از چنین رویارویی درس‌های خوبی درباره فروتنی، بردباری، خیشتنداری و مسئولیت‌پذیری به او میده. دو. شاید برای شوک درمانی یک بیشعور بیچاره کافیه که شغل مناسبی به او داده بشه. ترجیحان در خط تولید صنایع یا شرکت‌های نظافتی شبکار. این کار به اعضای خانوادی او که برای انجام خرد فرمای شاش از زندگی سیر شدن مهلتی میده تا نفسی بکشن و به خود بیشعور کمکی میکنه مستقل و متکی به خودش باشه. سه مثال جدیتر برای شوک درمانی رفتن به صومعه یا خانقاه و نزد کردن برای شش ماه سکوت و اعتقافه. این کار بیشعور رو قادر میسازه که بدون خطر قرر شدگی در خود فرو بره. چهار، فیلمهایی یا از زندگی عادی بیشعور و قشقره هایی که به پا می ضبط کنید و سپس او رو مجبور کنید که روزی دست کم ده ساعت اونا رو تماشا کنه، اونقدر این برنامه رو ادامه بدید تا درهم بشکنه و به مردم آزاری خودش اعتراف کنه پنج، بیشعور رو برای گذروندن دوره آموزش نظامی تحت فرمان یک عبر بیشعور سبت نام کنید او در طی این دوره خواهد فهمید که زرگویی، لجبازی، حرف نفهمی و اردنگی چه مرزهی داره. اگه این راهکارها با شکست مواجه بشه، شما با یه بیشعور غیر قابل بازیافت سر و کار دارید. کسی که برای درمان بیشعوریش آماده نیست و هیچ کسی هم نمیتونه به او کمک کنه. بنابراین فقط یه کار میشه کرتم. راه او برای ورود به کارهایی که بیشعوری در اونا مزیت و فضیلت محسوب میشه. کارهایی مثل وکالت و ممیزی مالیات. انجامن ناگم ناگمنام از همون موقعی که بی به مرحله دوم درمان یعنی کشف جوهره بی خودش میرسه بهتره که ترغیب بشه تا به یک انجمن متشکل از سایر بیشعورهای تحت درمان بپیونده این انجمن ها انجمن های ناگمنام یا به اختصار A N نامیده میشن اینا مثل الکلی های گمنامن اما با این تفاوت اساسی که نباید گمنام باشند این تفاوت ناشی از تفاوتی عمده میان بیشعوری با دیگر اعتیادای رایجه کسی که به الکل یا مواد مخدر اعتیاد داشته طبیعیه که بخواد گمنام بمونه. اما آدم بیشعور مدت های مدیدی با آبزیر کاهی و حق بازی گمنام بوده. برای رسیدن به احساس شرم و گناه که لازمه درمان بی باید دائم تشت رسوایی او از بام بر زمین بیفته و چنین چیزی با ناشناختگی امکان پذیر نیست از این رو باید تمام اعضای هر یک از این انجمنها با چاپ یک آگهی در یکی از نشریات محلی علنا به بی خودشون اعتراف کنن با محتوایی در این مایه ها. بدین وسیله این جانب فلانی اعلام بیشعوری می میکنم من صادقانه به خاطر تمام آزار و اذیت که به شما شهروندان محترم رسانده ام پوزش می خواهم و با فروتنی از همگان برای جبران خساراتی که وارد کرده ام یاری میطلبم. طلبم باشد که با شعور شوم در این انجمن اعضا یاد میگیرند که جلوگ جمع به عادات قدیمیشون به درگیری با دیگران، وظیفه نشناسی، فرافکانی و استثمار دیگران اعتراف کنند. اونا هر بار درباره رفتار هفته گذشتهشون گزارش میدن و اگه با نادرستی و حق بازی و مسئولیت ناپذیری به عقب بازگشته باشند، با یکدیگر درباره دلاگل و راههای پرهیز از تکرار چنین مواردی در آینده بحث میکنند. خلاصه یک کلام این که این انجمنها در حکم پناهگاه ها که قابل اطمینانی برای بی هستند تا بتونن امیقترین ترین مشکلاتشون رو بیرون بریزن و تحت حمایت و نظارت جمعی هم قرار بگیرن مراحل شکلگیری و عملکرد چنین انجمن هایی رو میشه در کتاب راهنمای های ناگم ناگمنام یا به اختصار راهنما یافت در این کتاب بر ممنوعیت انجام دو عمل در جلسات این انجمنها تاکید شده. قرض زدن و دیگران را مقصر دانستن. همه بی به این دو کار عادت کردند و جلسات اگر کاملا تحت کنترل نباشه، میتونه به سرعت تبدیل به میدانی برای قرض زدن و دیگران را مقصر دانستن تبدیل بشه. بنابراین هر وقت که یک بی پاک شده، حواسش پرت شد و شروع کرد به قور زدن یا دیگران رو مقصر دونستن، وظیفه یا هر عضوی از گروهی که فوراً از جای خودش بلند بشه انگشتی به او بزنه و بگه همینه که هست همینه که هست دیگه اینکه لازمه هر عضوی فارغ از خود بینی بزرگبینی کاراییو که در فاصله جلسه‌ی گذشته تا این جلسه انجام داده برای دیگران تعریف کنه این بخش گهگاهی مشکل ترین قسمت تداوم درمان محسوب میشه چه بسیار اعضایی که به خاطر جل کردن داستانهایی مملو و از فداکاری و قهرمانبازی از انجمن اخراج شدن. وقتی که بیشورهای شرکت کننده در این جلسات، بتونن واقعا ادعا کنند که دستکم یک ساله که از تمام عوارض بیشوری پاک شدن، براشون جشن میگیرن و به اونا لوح افتخار پاک و باشعور میدن. برنامه دوازده مرحله ای برنامه ی ترک دوازده ای در ابتدا برای درمان الکلی ها ابدا شد. این برنامه بعدن برای ترک اعتیادهای گوناگون از جمله مواد مخدر، پرخوری و قماربازی با موفقیت به کار برده شد. این روش رو با تغییراتی برای درمان بیشوری هم میشه به کار گرفت، اما باید با دقت از اون استفاده کرد. این دوازده مرحله رو که متناسب با ترک بیشوریه به این شرح ارائه میدم. 1. قبول کنید که مثل بیشورها رفتار می کنید و فعلا نیروی برای تسلط برون ندارید. به همین دلیل زندگی خودتون و اطرافیانتون به جهنم تبدیل شده. دو، بپذیرید نیروی برتری وجود داره که آدمیان رو برای رستگاری آفریده. بالاخره شما هم جزو آفریدگان هستید. سه، اشکالگیری و زدن رو متوقف کنید. تا بلکه آن نیروی برتر بتونه، شما رو با هر ضرب وزوری که شده از بیشعوری نجات بده چهار بدون هیچ واهمه ای فهرستی از همه کارهای خوب و بدی که کردی تهیه کنید از جنایت هاتون بر ضد بشریت گرفته تا کارهای خوب نادرتون این تصویر هولناک شماست پنج به مردم آزاریاتون اعتراف کنید این اعتراف میتونه در حضور خدا وجدان خودتون یه آدم باشعور یا هر کسی باشه که هنوز حاضره به حرفاتون گوش بده. 6. نظر کنید که برای پاکسازی کامل از بیشعوری آماده بشید. برای ادای نظرتون همچنان نیروی برتر رو یقه کنید. 7. از شرمندگی و عذرخواهی بابت اینکه هنوز بیشعور هستید دست بردارید. طوری رفتار کنید که انگار باشعورید. به خودتون تلقین کنید تلقین کنید هشت فهرستی از کسایی که به اونا زور گفتید بی اتنایی کردید سرشون رو شیره مالی دید یا با اونا مثل برده ها رفتار کردید فراهم کنید عهد کنید که همه ی کارهاتون رو جبران کنید برای تهیه این فهرست میتونید از راهنمای نمایی شهر محل اقامتتونم استفاده کنید نه. نزد تمام افرادی که نامشون در فهرستتون هست برید و از اونا حلالیت به تلبید، به جز اونایی که مطابق حکم غذایی حق دیدار و ملاقات با اونا رو ندارید. 10. رفتار روزانتون رو رسد کنید. اگه در حال اشتباه هستید، بیدرنگ بپذیرید. اگر این کار براتون خیلی سخته، یک کاراگاه خصوصی استخدام کنید تا اکس های پنهانی از شما بگیره و بعداً از اونا برای حق و سکوت گرفتن از خودتون استفاده کنه. یازده با هر عملی که بلدید، از دعا و نیایش کردن تا مدیتیشن و سینمال رفتن، سعی کنید ارتباطاتتون رو با نیروی برتر بهبود بخشید. اما بدون چشم داشتن به اینکه به عنوان یکی از برگزیدگان خدا به شهرت برسید. دوازده، اگه این روش به دردتون خورد و خوب شدید، این رو با اعمال و رفتارتون به بقیه بیشورهام نشون بدید و مثل آدم به زندگیتون ادامه بدید. این برنامه رو میشه به تنهایی یا تحت نظر یک درمانگر انجام داد. درمانگر به شما کمک خواهد کرد تا به عمق خود بهتر و بیشتر واقف بشید. به ویژه در مورد شماره چهار که تهیه کردن فهرستی از نقاط ضعف و قوته، یک درمانگر حرفهی میتونه بسیار مفید باشه. بیشتر بیشورا میتونن به تنهایی زعفای خودشون رو ببینن، اما تعداد بسیار کمی قدرت کسب خسایل انسانی دارن. ترحم مثال خوبیه. این خسلتیه که یک بیشعور در حال اصلاح باید اون رو در خودش پرورش بده اما آدم بیشعور عادتاً گمان میکنه که ترهم نشانه زعف و بیارزگیه بنابراین نوع نگاه او به زندگی باید کلن تغییر کنه بیشتر بیشعورها سالها خدا رو نادیده گرفتن وجدانشون رو خفه کردن و دوستانشون رو از خودشون روندند پس طبیعیه که نتونن به راحتی دوباره با دوستان، وجدان و خدایشان رابطه برقرار کنند. عملیات پاکسازی واقعی خسایل بیشورانه و جایگزین کردن اونا با چیزای بهتر فرایندی طولانی و پیچیده است. برای رسیدن آسان تر به این مقصود شاید بهتر باشه که به این پروسه پاکسازی به عنوان نوعی روزه نگاه بشه. منتها اگر روزه متعارف، عبارت از پرهیز کلی از غذا برای پاک کردن جسم آدمه، در اینجا نوعی روزه برای پرهیز از عادات بی طراحی و به کار برده میشه برای این کار یک عادت بی مثلا وقاحت رو در نظر بگیرید و یک هفته تمام از اون دوری کنید هفته بعد یک عادت دیگه مثلا کینه‌جویی رو در نظر بگیرید و هفت روز تمام از اون دوری کنید هدف از معالجه توقف همین عادات. برای این منظور شاید مجبور بشید از برخی از اهداف قدیمیتون منصرف بشید اهدافی مثل برنده شدن به هر قیمتی یا با آبرو و اعصاب دیگران بازی کردن طبیعتا امکان عد این عادات در هر ای وجود داره هر وقت که عود کردن یه شوک الکتریکی به خودتون بدید یا اثرتون بیفته و یا انقدر به خودتون شوک خواهید داد که برای همیشه خودتون و دیگران را از شر هر اوجی خلاص کنید. وقتی روز گرفتن به موفقیت منجر شد، قدم بعدی اینه که خسایس مثبت مثل راستگویی، کمک کردن به دیگران، قدرشناسی، رفتار دوستانه و تشویق کردن دیگران رو در نظر بگیرید. بعد هر هفته روی یکی از این خصوصیات کار کنید. اما به عنوان کسی که هنوز از بیشعوری پاک نشده در نظر داشته باشید که طبع حساسی دارید و آنقدر زیاده روی نکنید که از آن وره با بام بیافتید اینا ابزارهاییه که میشه برای درمان بیشعوری از اونا بهره برد هیچ کدومشون جادویی نیستن به کار میان اگه به کار ببریدشون و از به کار بردنشون دچار غرور نشید درمان خودتون یا اطرافیانتون رو شروع کنید چاره ای نیست